ترس ترس نداره یا برا خودم میشی. نوع عروس من ببین چه داد بزنی چه بکشی بعد بری تو برو نگاه نکن یالو تو پادن یه روزگاری نعرم لرزه منداخت به جون دوست و دختر وزیر و وکیل و تاجر صف بسته بودن که زن من شد صف برو با آدم بیشرف و بیغیرتی طرف نیستی می قول میدره اقدم بشی خیلی زود آشقا میشی فقط بایستی بدونید اونش هم غیر از بریمش این مرام منه سرهنگش کشمت تو که رسم شرافت بلدی نه هم کن برم دنبالم هست اینجا پیدا کنن میشه ها. یه بارون زده ترس نداره نه ترسون التماسون من بیکسه کار دیستم که التماسه توی راه زنم بکنه. از این راه رو که رد شدی بیکسه کاری کسه کارت کلاب میشن پر میزنم که اینجا توی این قار اغبر میشن چرخ سرم برشت چرخ از الان هم سفر شیطان میشی و شریک برنامه خیلی باز زیادی یکی راست گفتی برگردم خونه حتی بکم از هم رو کل سرپنه حتما یه برمی سرم دارم قبلن پرفش زده باریم بعد بریم یه جایی خوگه مثلا نمیدونم گم و گرشی این مملکت بریم اون با به کدوم به کدوم پول اگه دوباره خراب کاری نمی کنی و دل و جراعت داری یه رای پیش پاک شکوه زنم رو گنج خوابیده هیش که هم خبر نداره من راه جوابت نشون میدم تو میری همه چی ور می و می رو بر میداری یا میری بعدش میریم می یه جایی گم میشی گم بوله هر کاری میشه گرد فقط یادت باشه اگه بخواییم نارو بزنی اون گنج رو بالا بکشی هر جای دنیا که بری پیدات میکنم و حق به تو میذارم کفه دست پس دوباره گند نمیذاریم من دیرم این سبه در تو چسته مردی که خوز رو الان یه حیرون سخمیه اونو چم زیاد داره یه غیعت رو بکنم چسبه اون, اون خودش بس کنم این می چه میدوز تو واسه خلاص شدن از این مهده چاره دیگه ای نداریم اینا حالا اینگه هنجه شکوه از در تنه قیمت نداره بیشتر از اون که فکرشو بکنی ماخر این باره که به زنت میان کردم نتیجه شدی داغته باور کنم که تو خوبی قراره بیفته منو بده چی پیدا کردی؟ از وجوده چه خبر. گرفتنش. اینم چپ از خودشو گرفتار میکنه. میگم شوکو سرکتنه رو داشته شده؟ بنا یعنی یعنی شکوح مرده؟ ممکنه حاجیده ای از محوان خبر داشته باشه برو به یه طریقی با حرف بزن چه خوشگلی حیف زود خاکستر میشی من از خوشگل خوشگلتر بودم اومدم اینجا به این پیسی افتادم راه فرار رو نشونم بده بذار من از اینجا برم سرم رو میباره میذاره رو سینم تو کیشی؟ زنشم زوری عین خودت. مرتیکه جوونی، خوشگلی، خوبی. بعدا منم می‌خوام چیکار؟ داد نزن. فریاد نکن. با من بیا تا بهت بگم. زار تا خواهنده اشکر پاشنه خونمون از جا کنده بودن که دخترتونو بدون به پسرموند واسه کمونه ابرو شب گیسون شعرها گفتن من چشم مذک میکردم به پاشنه ارسیم هم حسابشو نمیکردم میچه زندن جیگر آتیش می زدم، دل می شکندم. شده بود لذتم درد و آه و عشق و شا. هرچه ناله و نفرین و التماس زاری چون بیشتر کیف و خنده و تمسخر من بیش. که کینه یا شار دامن وقت منو گرفت و یروز یه, یه از خدا بیخبری منو دزدید و فروخت به این حشمت و شمصفت قسمت من از خوشگلیم سلام چرا الان قد داغونی؟ چه کار کردم باید؟ آب میخوری به ریزه هم؟ دادگاه تشکیل دادن و وکیل گرفتن تو جرمه تو گفتن وکیلت دفاع کرد دادگاه تموم شد برای تو حکم بریدن اعدام اعدامو نمیتونم کاری کنم ولی میتونم کاری کنم زن و بچه صحیح و سالم برگردم پیش کسا کارشون فقط باید چهار کلام حرف بزنی باید کمکم کنی میتونی؟ از رو بر دنیا آمدی؟ پارسی رو به درست محرم زنی من که بتونه به تو کنگم کنم اکسارو میخوام یه دعوایه بین مردم و یه شاه قاتل شما خوشا این دعوایی به صلاح شما و مردم اتونه که این ماجرات تموم شه. خیال خام میبافیم. مردم از انتهاداتشون میمتونه شده کنیم. به زور نمیتونه رجابه از این مردم بردنیم. شاهتون هر کاری میکنه واسه پیش مردمشه مردم اشه. از که تا رو پیش مملکت شما مهم شده. قدوم مملکت پا گذاشتین که وقتی اومدیم بیرون آباد شد. از از سره این مرک بردارید مستر اون روز فردا اون مردم تکلیفتون یه سره عکس دارو میخوام یعنی آب بده پیشت زنه تونی فکر کنی از آدمایی مثل من چه کارایی برمیام. داری محک کم میشنیم اونم با زن و بچه شک نکنین یه صلحه از نشده کاری میکنم که نه تنها حزنه جای عکس بده رو بگه که به کارایی کرد و و نکردشم طراف کنم چه ترزیمی هم انجام بدهیم ببخشید دستشون رو بله اگر به این صورت آوردن خمیشید ای به دست مبارکشون میزنید اگر دستشون رو درافت کردن دستشون رو میفشارید جان نسار با قلبی مملو از احساسات شاه دوستانه جان با قلبی مملو از احساسات شاهپرستانه سلامتی و بقای ذات شاهانه را خواستار و سلامتی شاهنشاه عظیم و را از خداوند بباشید خیلی طولانی شد عجله نیست و صلاح نیست به جهت عجله نقطه‌ای مقفول بمونه نه نه نه نه ممکنه اه نه حضرت حسنه شده شده شده شده ببستید قربان اتفاق مهمی افتاده پس منزر قسمتی تو سهم منم بشه یه راهی برسهم من منش کنم بده یه شرک دارم به فضیلی راه فرار رو نشونه هفت چی باشه باشه انجام میدم. بگو اگه میخوای از اینجا بری نه به چیزی دفت بزن نه به چیزی لفت تو بیان سراغت باکر میکنی اینجا برم تا دیست کرا خواهد یار کرا ترابد قردار پیاده بستارو پشمات مرد باگه سراجاد باگه سراجاد دوست درسته دیالش نیست باید داره باسه جراحی. زنده بیدو دیه. زنده بیمونه امکان داریه پاشو ها دست بید. من باید برم برای اتاقم. هلو موکشه. بیفرد. جناب مصطفی. جناب مصطفی. دکتور کنو خلخم با حتون امروز بزنم. باید روشی باید. کردی با این دختر نکن بلشکا بذار بره کجا بره خریدمش گناه داره معصومه این دختره تو الان عالم... من معصوم نیستم نبودم محبت نمیخواستم نمیخوام من جاش کلفت کنیزی تو میکنم این چند سال منو فضی رفتی محلم داری چی شده این سال. راهش کن دره این دختره پدر و مادر داره کسیه واسه خودش منم یه زمانی کسی بودم. راه که میرفتم تو ارتش فوج، فوج، ارتش یا غذا، زیر پاون باق باق میکردن بسته زیر این کردیشه ایتون افتده به جین گوشت پوستت اگه ای گوشت منو خورده تو رو گوشت و مغز آقلتتو برده از کی گرفتم من این آتیش جهن نما ورا با دختر عرف بزن علیش کن حشمت مرد زندگیه. بگو خوشبختت میکنه برای دختر قبیه با اراده ای هستی تو همین یه ورد به بادرت رفتی بروانه کجاست هنو سن. تو فقط به این فکر که از زیر تیغ جراحی بیرون بیاری دیگران نفرشی من تا انتقام به نگیرم من به سرش بردم بدتر از بردم سپردمش دستیه موش جنوبر بیابون نشین بنایی سرش بیارن چه هزار بار آرزوی مرگ بکنن چشمام نمی همونه هستی که همیشه شکور میگفته همه هیچ وقت نمیدونی رو درست کنی خب بعدو و اگه رو بباد نبودی اتاق عمل آماده است شما لطفا بفرمید بیرون اول دینه پنجابی اینو ببین من میگم که تو راست میگیو من دختر شونه ولی هنوز زنده فقط مرده اینو هسوووووو بگیر برو پایین میریستی به ی روز خونه قاده روز خونه شهر می‌رسات من می‌تونه کمک کنی یا ردی ازش نمی‌تونه؟ نیستش اومد بفرستنش بشه من شما میگه سلام نیست اینجا باشین جام کنیم بریم مشات خیق تو شرمنده دلم با آمدن نبودم دادش همگرد ببینه من نیستم خول میشه همه به بهوز به منه خدا اومده می ریم خوب مغه براش یه دو خ براش می نوشت مییم رفتیم کجا بهزی ؟ با این معم جماعت و جماعت مگه کاغذ میمونه می نوشتیم بر آدرس میذاشتیم اصلا سفاش میکردیم که خصود خودش رو به ما بریم بل که خونده شتمده نیست گرفت. به یکی بارش بخونه نه نقل نوشته و کاغذ نیست دلم رزا نیست توی آشوب با هاگی باگه بکنم بیان که چی بشه میخوام اینجا ببونم دستگیر اینا بشم بح بح بح بح سلام علیکم باز اومدی آخه این چه سفریه چه چه رفتنیه همیز خسته که در نکرده میخوام برگردین درده درده شما همه چه سفر جاده هست عادت داره شهرمانده. اون سیاه که از وگرنه مخال بود بزار در نکرده بید برای تو با با قضا آوردم بفرمین برای سفری تو با بردم بفرمین بفرمین در خدا بریم سلامت <متحدث> موازیم هم دیگه باید خدا الی ساتیم با کوزار. اینها اخوانم هستند. اگر هرکس نیزدی تو فراموشت فریده. بايد بدي ماي سمينا. بايد تو كوزار. باشه آدم و ساکوما بازدم شو چیکار دارن؟ باش چیکار تو رفتي نیستش رفته. دبندم داره میزد و لیستش بابا جانیش تو شاد هستم می‌گم ها یکی من belge çok ganjes nokta یه کار و اردو ثیر به دردی و آب به سری چهار خورو چه می با؟ پس اون همه چیز چی دادم؟ من همیشه بیم از کار کنم. حالا بیش از آهن چی به هرگونه کورکوروگو زمانی مکادم برم؟ دلار! حالا چه دیماهی ما دلیلش هرگز خود. خب این کارا کنار اونقدر دستم رو دهنم میرسه که شما رو راضی کنه لاخبه یه گنده تر از دهن همیشه تو گروی آدم گیر میکنه و گرو میشه جمع کردی شهر هرته دختره رو برداری و دریم در رفتن کدومه تو همین شعری امارت برش میگیرم با دکتر از خونه شما خفه شو یه آدمی مثل تو رو به گاریم نمیپنده چقدر طلا به پاش بریزم ها که پس پسمز تو این بملکه این روزا هیچون بد نیست تموم باقونتا بگم رو چشم میدارم ارزا به رو چشم باشی میخوام یه کاری کنم که راحت زندگی کنی خلاص و آسوده بعد بدبختی سر آدم بیاد از ادچش آدم اگه نتونه ببینه حوثشو هم نمیکنه. کنه میخوام بدم اون چشم دیگه تو از حدق در بیانم که بگوناده نتونه روشانتو بکنم نگاه بزن توی عاشقیم نکنم که از وقتی که رو تشت افتادم خندره نامرده سرد بار بایستم و چه کافته نه یه گذتو گرد مثل تو، مثل همسالتو مثل خره و همونده تو گل نیفتادم به چاپ روزی بزرگا زدم، همه شونم زدم گنده تر از شونم زدم و الان از کشم رو در میاریم و جنجونم خونتو میبیزم که دیودن افتادن رو خواست و گرد می‌گام خاطر دارم خوبش دارم کیان چیکار با لبخندی ساده بشین برو تا من مثل آینه تماشا کنم به زرار زومای گم کردم و تو چشمای مسته تو قیدا کنم به تو چی خواهم از این زندگی دل من تو رو آرزو میکنه کنارم بهم ننگدوننظر تو باشی به من درخت رو میکنه. Come on.